در او از روح خودم سقع او لهو ساجدیم بیفتید به حال سجده در براماره بنابراین در وجود آدمی یک پرتوی اگه دریا بگیریم هر زاپستی و زاکه هر رو یه قطرش به هر کدوم ما رسیده و این،, این وجودی که امروز ما داریم و این نمود بودی که ما داریم در حقیقت هر پرویست از اون وجود است. اینجا اشعره به همین خاجی میگه اگر نظری روشن است از پرتو روی تو است. هیچ نظری نیست که روشن باشه و از پرتو روی تو روشن نشه باشه منت دارد درد بر بسری نیست که نیست هیچ چشمی نیست که مننت خاک داره تو بر اون نباشه هم دنبال همون مطلب اولی است و اگر چیزی هست اگر حرکتی هست الاله و الخلق و الامر بازدار آن هست که خلق و امر دست خداست بنابراین هرچه هست از اوست و هیچ کس اصلا غیر از او نیست ناظر روی تو ساهد نظرانم ها آره. رو سرگی سر سویتو در هیچ سریع نیست, نیست اولا یه نفتار من بگم که امیدوارم دوستان به این درجه رسیده باشن که گلچنگ رازو محمود شویستری رو بگیرن بخونن شهر گلچنگ رازو بگیرن بخونن برای خاطر این که صوفیه به جای عبادت خدا یا به جای ترسیدن از جهنم یا شوق داشتن به بهشت در حقیقت ذات حقش می رزه. به همین دلیل از اصطلاحات مربوط به معشوق استفاده می کنند برای نشون دادن مسائل خودش آیا حق هم دو رست سفات خائلند یکی سفات جمالی و یکی صفات جلالی صفات جمال عبوست رحمت هست بخشایش هست تو رو فرستادن نعمت پوشیدن گناهان بندگان، بخشش بنده ها این ها صفات جمال خدا هست و صفات جلالی همه ناشی از قهره عذاب و اغاب و عرض کنم که نراحتی هایی که مونم کنه برای کسی که بیش بیاد اینا استفات جلال رو خداست و استفات جمالی به رخصار و اجزای صورت تعبیر می کنه استفات جلالی به زلف و چین زلف و ببیندن این حرفا دا. اینو داشته باشید برای اینکه بعدها خواهید رسید یه جایی که کاملا نشون میده این مطلب. چه مراد از ظلف و خال و اون چه سیاه هست و اینا رو ظلمت هست و صفات قهر هست و صفات قدرت هست و صفات حیمنه خداوندیست و صفات جلالیست ولی اینجا اشاره میتونه یه مسئله یه هست بسیار و مهم مهمه اینجا نمیدونم چه هم میدونید یا نه که شیعه معتقده که به هیچ نه بید بره هیچ وزید و به هیچ ترتیبی خدا رو نمیشه دیر. با این دو چشم نمیشه دید و فردوسی که شیعه اوده در بیش از هزار سال پیش میگه به بینندگان آخریننده را نبینی مرنجاند و بیننده را. این ترجمه یه آیه قرآن لا صدره فررحصار به حوال لطیق کل اپسار به حوال لطیق کل کنش برای اینکه وقت زیاد نگیره زیر زدرش میزه میگه هیچ چشم او رو درک نمیکنه، کنه او رو نمی ولی او چشمها رو درک و اون و صاحب قبل شیعه در اساس تفکر معتذلی یکی از گروه فکری اسلامی که تفکرشون با شیعه نزدیکتر بوده معتقل که خدا قابل دیدن نیست اگر کسی خدا رو بخواد ببینه به ششن سر به ششن دل باید ببینه نه با این ششن گروه دیگری که بهشون گفتن اشاعره و یه قضی بیشتر روی مر روی معنی تحت اللفظی کلمات می‌رفتن و در عصر آقص، اون عقیده بیشتر بین اهل سنت بیشتر رایج این نوع تفکر اونا به یه آیه دیگری از قرآن استناد می‌کنن و میگن که روز قیامت مردم به خصوص کسانی که کار نیک کردن تا همین دو چشم خدا رو میبینن اونا هم به یه آیه دیگه قرآن استناد میکنن وجوه هم وجوه هم دو رفته ها ناظره این ناظره با ذات یعنی،, یعنی با ترابت و خوش خاب رنگ خوش, خوش میگه در اون روز چشم های اونا و صورت های اونا رخصار اونا با ترابت و به خدای خودشون می نگرند. نمه های حالا البته کسانی که مخالف دیدن با چشم سر هستند اینو رد میتونه به میگن نه این نظر غیر از دیدن نمیدونه از حرفا اون رویت کسی میگن اونایی یعنی هم که به عکس معتقلن به این که آدم با چشم سر خودها رو میبینه اون آیه اولی رو میگن نه محصود نمه هم چیه خلاصه توجی ولی اصل مطلب این است که قرآن آن کریم کتابی است مثل اغلب کتابهایی که در مدت دراز و درنتیجه مکاشفه و ارتباط با عالم غیب وجود آمده میشه شو ازش شواهد متعدد در های متعدد استخراج کرد. از جمله همین دیوان خادیه که آخوند میاد شواهد بسیار ازش استخراج میکنه که خادف است درویش میاد شواهد بسیار استخراج میکنه که دریش اینا اطلاعاتی میاد استفاده می کنن اطلاعاتی میاد در که عرقور بود آدم هرهوری دهری زندگی میاد میگه که آها این ویدین بودید هم شوابیت از خداحافظ پس قرآنم هم همینطوره حتی در مسائل خیلی خیلی ساده ادبی به قرآن استناد میکردن من یکشو براتون میگم برای اینکه شاید براتون جالب باشه صحبت این است در علوم عدوی در معانی بیان میگن که کلام دو جوره یکی کلام انسانی و یکی کلام خبری کلام خبری اون است که درش احتمال صدق و کذب دره قرار الخبرو یحتمل و و الكذب. کلام خبری مثل این که من بگم دیشب پلو خوردم این سخه ازاد که من آدم راستوی باشم یا نباشم که بدون این این کلام که من بگم شب پلو خوردن، این ممکن راست باشه ممکن دروغ باشه در حالی که اگه بگم آقای شابی پاشوی اما دخته این نه راست نه دروخ احتمال سرخ و کس بشترش نمی اصلا اون کلام اول میگن قرار و کلام دوم میگن کلام این شایی که احتمال راست دروغ نداره بعد من بحث میگن خب راست خدومه دروخ خدومه حال سمیتونم بگین راست بکنیم دروخت بکنیم فرد راست بکنیم دروخت بکنیم یه ادجای آقاین گفتم که راست مطابقت کلام است با واقع و دروخت عدم مطابقت کلام است با واقع شما الان میگین بارون میاد های بارون بیاد بیرون راست بکنیم های بارون نه تو اما اینجای مشکل هست او که من داشتم می اومدم بارونم می اومدی آدم تو اتاق از من پرسیدین فلانی بارون میاد، گفتم بله ولی وقتی گفتم بله اون بارون بند اومدی من هم قصد دو گفتن نداشتم بارون می اومدی من راست یا دو اینجا یا اکسشی بگیر بارون نمیواده من اومدم تو گفتین بارون میاد گفتم بله به درو اتفاقا وقتی من گفتم بله بیرونم بارون گرفتی من راست میگم یادم یه دسته دیگه اومدن از علماء گفتن که نه آه مطابقت با نیت گوینده است در راست گفتن و که عدم مطابقت با نیت گوینده است در راست یعنی اگر بارون بوده من میگم بارون میاد علاوه اینکه الان بارون بند اومده باشه من راست میگم. قابل اعتراض نیست اصلا. یعنیpale اون که بارون بیاد من میگم بارون نمی گفتم بارون میاد ال... الان بارون باریده من درو. من <تصفيق> میگم گفتم اول گفتم که با واقع تصدیق کنید. یعنی وقتی میگم بارون میاد حتما بارون بیاد. بیار. عفیدو بم گفتم با نیت گوینده یعنی من میام تو بارون نمیاد شما با هم میگید بارون میاد میگم بله یعنی میخوام دروغ بگم همون وقتی من میگم بله بارون هم میگیره دروغ حالا من راست میگم یا دروغ میگم من قصد دروغ گفتن نداشتم حرفم راست شده حالا فسایق این راست یا دروغ میگن نیت گوینده یعنی شما بخوای راستگی یا دروغ بگی نشند. حال به این مسائل کار ندارم اینو خواستم ببینید که قدیمیات چه چیزایی رو مورد کنجکاوی دقت قرار میدهدن هر دو این دسته ها برای استحقام نظرشون از قرآن شاهد نبودن همون یکی که مطابقت با واقعه شواهد از قرآن اقامی کردن همونهایی که مطابقت با واقعه باز از قرآن داریدن برحال اینجا حافظ در روزگاری بوده که مذهب اهل سنت و طرز فکر اشعری حاکم بوده و این که ناظر روی تو صاحب نظرانه همون اشاره اینه رجوع هنجا امایزه ناظره الارده ها ناظره اینجا هم میگوید که فقط نیکوکاران کسی که کس رخزارشون با ترابطه خویاره میبینه نه نه اینه که میگه ناظر روی تو صاحب نظران ولی سر گیسوی تو در هیچ سریع نیست که نیست گییسو گفتن اشاره به صفات جلالیه و در نتیجه اون جماعت دیگران اگر عذاب میشه اگر خدا رو یا اگر گرفتار عذاب میشهن باز از او روشن شد کاملا روح صفات جمالی ناظر کسی که ذات حق رو که جمال مطلق و خیر مطلق و کمال مطلق و عریدی صوفیه ببینه دیگه سعادتی از این بالاتر نیست میگه ناظر روی تو که مظهر صفات جمال صاحب نظرانه ولی سرگی سوی تو در هیچ سری نیست در ذهن رو بگم که این هیچ سریع وقتی میگه یعنی اون ساعت نظران هم میاد جوزش دیگه آی نمیاد در قرآن آیهی داریم که همه افراد بشر باید از جهنم رد شد اونتوها نیکوکاران خیلی به سرعت لط میشن و گرفتار نمیشن ولی بدکاران اونجا ساکن میشن به تناسور وقت بایشون هست و این منکم الا وارد ها و این منکم الا وارد ها یعنی هیچ کس از شما نیست مگر وارد جان. همین هم همین هم همین هم همین نیست همین یعنی نیست یعنی همه همین هم در, در معرض صفات جلال همین هم همین هم همین هم همین هم همین چه عجب خجل از کرده خود پرده دری نیست پرده در یعنی کسی که روزباه بکنه بیاوری بکنه مردم راز و فاش بکنه بارها و بارها حافظ عشق رو به و بقیم مازی و فاش کردن راز فست کرد. ای از بهترینشینه. میگه سرش کم آمد و ای بم به گفت روی به روز یعنی تو روی خودم سرش تمامد و ای بم بگفت روی به گفت روی بر روز شکایت از چه کنه؟ خامگیز غمازهگه سحنچین من خونیکی تو آمد اشک عرو خواهم همچینی چیز کردم بر سر اون یک کلاس گفتم ب به حالا چی چیزین گفتن رذخون پشمچال هر مستمایی که میاد روزش از این است که یه نفر مطالب دوره تکرار کنیم تو آسمانه هیچ وقت اشک خون از چشم‌ها نمی‌ریه چند ده سال گریه کنه خون از چشم نمی‌ریه پس اینکه میگن اشک سو شد یا اشت خونین به طبیبان بنمودن یا امثال اینا خیلی تو دیوان فاجحه است این چیه جواب این است این بر سبیل موالقه است برای اینکه وقت گریه کردن چش تحریک میشه و سفیدی چشم های که در سفیدی چشم استعریض سرخ میشه چشم آدم موقع گریه کردن سرخ میشه او رو تعبیر کردن به خونین یا سرخ اشک من در ذقمت سرخ در زم آدمی که کار بد کنه خجالت می کشه دیگه بنگوی سرخ میشه. پرده دریم بدتر این کار. میگه اگه عشق من سرخ پر در قمط و سرخ بیرون آمد عجب نیست برای اینکه هیچ پرده داری نیست که از کرده خودش خجالت مکشی یعنی عشق من خجالت کشی از این پرده داری که کرده بسه باشی باید بگم که در مذهب اهل تصوف یکی از که در کتوفت در جوان مردی هم هست یکیش مسئله رازداری و نگهداری راز و برای اینکه که فکر نکنید که خواص همه صوفیه چه رازی دارن که حالا نمیشه به کسی بگن جواب این است که اولا لازم نیست راز چیزی مهمی باشه اگر پیر یه چیزی رو گفت که تو باید این نگه داری باشه این اگه فاش کرد اینا این کارش قرار و معروفه میگن که گفتن که زنون مصری معروف بودن که اسم اعظم بلد حالا اسم اعظم بعد میگیم اسم اعظم الان به طور خلاصه در دو کلمه میگفتن معتقد بودن که خداوند اسمهایی داره که اگر کسی رو خدا رو اون اسم ها به خانه هر مراجی داره خدا بشمیده این اسم اعظم حالا <كتص> این از کجا آمده بود شده شده رو بعد معروفه معروف بود که زنون مصری اسم اعظم داره و حالا داشته یا نشته نمیدونه یه مورید بیچاره یا آمده بود که این اسم اعظم رو خواهش من یاد نمیدونم پول شده بود نمیدونم چه گرفتاری داشت حال اسم خب آقا والا بالا و خیلی پیغمبر من بلد نیستم اسم عظم نمیدونم این باور میمی چسبید که نه باید بدید خب آقا نمیدونم گفت نه پیله کرد وقتی پیله کرد زانون یه موش زنده رو کاسه ای سرش هم پوشوند گفت اینو میبری میدی به, می می به درویش مثلا موگلیشا در پلانجا ولی مواظب باشا نبینی تو این چیه ها همینجور در وسته برگمه خوب چش آمد بیرونو و اون چیزی که در باطن آدم هست که نیش میزنه و به خصوص آدم بی فرهنگ بیشتر گرفتار این حالت حس کنچکای برای چیزهای کوچولو هست بالکی که با نه اهل فن و اهل دانش و اونا کنجکاوی خیلی بیشتری دارن، فضولی زیادتری دارن، ولی اونا فضولی میکنن در چیزایی که هیچ تاث ندیده، بفهم خبرشند. باحال اینکه آدم بی فرنگ فکر اینی که مثلا ببینه دیشا با آقای چی خورده شام، حالا خاص خورده. این نمیتونه تااقت بیاره که توی این ظرف ندونه چیه. یه خورده لای سرغوشو با میریم، اونم زنده بوده میره. میگه دنباش نمیشونی موشو که نمیشونی موشو رفت بعد کاثر رو به خاری خار و هزار خجلت برد پیش اون نوگلیش ها و در کاثر واکر دید کاثر خالی تو سبحان الله موشی گوش نمی توانید داشت گوش داشتن تو حافظم آمده دونی محافظت کردن دل زنافا که چشمت گوش داشتن لیکن افروی کماندارت میبرد به پیشانی گوش داشتن یعنی محافظت کرد. میگه سبحان الله موشی گوش نمیتوانی داشت آنگاه اسم عظم خواهی با <تصفيق> <تصفيق> که فاف کردن راز حتی یه چیز ساده مثل نگهداری یه موش هم باشه این واجبه در عرف سوفیه اما راز خیلی دارن یکی شب که در این مراحل هر کسی به جهان چیزی هست که اون مرید پایین‌تر طاقت شلنش نداره یعنی اگه مثلا یه چیزهایی که به مریدی در حد بالاتر میگم برای او بگم ببین امام کافر هست اینا اینا یه اعتقادن اینا بعد اعتقادن و بعضی هستند که هیچ وقت اون درجه نمیرسن که بتونن برسن به با اون بالا و به با اون حریفت و فکر کنه که تو خودی اصلا ذات حدی تو پرتو تو ذات تو فنای در ذات حد نمی فهمید فنهایی نباید نگه دارن جز به اون کسانی که صلاحیت دارن نگرن و همین دلیل مریدان پیر هر کدوم در یه ای هستند هر کدوم در یه سطحی هستند و پیر همه اینا رو میدونه گفت که ابو سعید و عبو دوتا مرید داشت هر دو احمد بود یکی رو بهش میگفت احمد که یعنی احمد کچیتر و یکی احمد مه میگه که شیخ را با احمد که انایت میش بود بیشتر نظر لط داشت اصبات به احمد که تا احمد مه یه روزی مریدان گفتن خواه خب چطور است که شما <تصفيق> با اینکه سابقه خدمت احمد امه بیشتره شما به احمد که بیشتر نظر داشت که تو صدا کرد یا احمد امه گفت لفت گفت آفتین برزن و این اشتر را برشانه گیر و بعد هم بر احمد امه در جا خوبی اولا که من نمیتونم اشتر رو بلند حالا فرض بلند کنم، این راپلی پشتبون اینقدر تنگه که این شوطه ایندور رد نمیشه حالا بازم فرض کنیم، من ببنمش بالو پشتمون، این شطه بزنم، پشتبون، پشتبون طاقت نداری، خراب میشی خوب، خوب، خوب بر سداکر یا احمده که گفت لبه خوب آسدین برزن، و هستور برگیر، و بعد ما هم بعد پوری اوها داشت، کرب گروش، کم شطور برداری بره گفتیدین؟ اون چون چونوچرا میکنه با من نمیسته من نمیفهم که یه آدمی زاد زورش نمیرسی شخصه رو برداریم یا این تلکون اون فقط میفهمه که تنگه من نمیفهم ولی این وقتی که آمده و خودش رو به دست پیر سپرده برای تربیتش دیگه چونو چرا در حرفش نمی کنه همین که خاجه میگه بمی سجاده رنگین کن گرد پیر مقام بودگرد جاده که روش نماز میخونه میگه با شراب اگه باید پیر بکن که سالک خبر ند باید زر آخر به منزل ها این است که این مسئله راز نگاه داری و این درجاتی که اینا داشتن نه در رو پیر سه مطلبی که این یکی میگفته این نمیتونست این یکی بگی و همین مطلبی که در مورد حسیند منصور حلا میگه گفت آن یار و از او گشت سر دار بلند جور ماشین بود که اصرار رو بیدام کرد گفت انالحق یعنی من دیگه نیستم حسین عبد منصوری در میون نیست هرچه هست او گفتن این ادعای خدایی میکنی دعوی خدایی گرفتن کشت این برای این بوده که این سر رو نباید پارش یا جای دیگری میگه گر خود رقیب چند است اولا رقیب یادتون باشه که اولاً به این معنی که امروز بکار می‌برید نیست یعنی رقیب به معنی کسی که با آدم مسابقه بزاره در کار عاشقی یا دو نفر یه دونه معشوب داشته باشند یا امثال اینا یا نمی‌گونم در کار حتی تجارت مثلا یک کسی با آدم هم همچشم هم چشم نیست دستن رقیب در دیوان حافظ، در سعدی و اونجاها به معنی مراقبه به کسی است که همپای محشوق حالا چه پسر نوخفت چه،, چه دختر زیبا میکردن برای اینکه بیگانگان و عوازل و عوازل و عوازل ازیدش او رو میگن رقیب به همین دلیل هم هست که حافظ از نخوت رقیب خیلی میناله رقیب درگذار بیش از این مکن نخوت که ساکنان در دوست خاک ساران. یا جایزگره میگه تو این عیدی نداری زید که رقیب خیلی بد توی اون غزال سباق و نکهت آن گلف مشت مو داری به یادگار بمانی که بوی او داری میگه برام شمایل مطبوع برام شمایل مطبوع هیچ ندبان گفت جز این قدر که رقیبان تو خود داری. یه زن خوشگل یا یه زن خوشگلی خوش دیگه رقیبشو شد بد افلاقشو مربوط نیست شو. رقیب به مراقب حافظ میگه گر خود رقیب شم از اسرار از او به توکشاند کان سربریده بند زبان ندارد میگه زبانش پند زبونش نداره سرش بریدن سرش هم وقتی ما خواستن کاموش کنن میچیدن برای اینکه که نکنه. آن شوخ سربوری به بند زبان نداره بنابراین مسئله سر رو، مسئله راز و مساله نگه دادی راز در تسبب هر راز هم اون راز هم ارزش بوده که بسیار حایز اهم و دا تو سوال دارید؟ سوال این پرده داری که چیز تو وقت میکنه به تارید کنی کنی برحال این عشقش پوشیده بوده اینجا صحبت اینی که عشق آمد منو فاش کرد پرده منو با عشقش نمیخواست آشکار بشه عشق آمد و عشق آمد. البته طور کلی میگه ولی اینجا مورد خاص اینه بله عشق, عشق من گردقم از ترک برآمد که عجب خجل از پرده خود پرده داری نیست که نیست تا به دامن ننشیند ز نصیبت گردی میگه من با اشکم تمام راهگزارا رو سیل خیز کردم یعنی عداقل اون تخفیف شد اینقدر یعنی این آب پاشیدم برای اینکه اگر نسیم از اینجا رد شد هیچ گردی به دامنتون تن آب به دامن ننشین نزد نسیم تو را سه نسیمت به معنی نصیم تو نیست یعنی تو را به دامن تو از نصیم گردی ننشیند من تمام رهبزارها را از نظر خودم سیلخیز کردم یعنی با عشقی چشمم اونجاها رو آب یاری کنم کردم قدم از شام سر زلف تو هر جا نزند با سبا گفت و شنیدم سهری نیست که نیست گفت و شنید اینجا یعنی بوگو مگو. یعنی من با سبا گرشداری دارم بوگو دارم چرا؟ اولا دم میدون که این نفس و وزیدن بادو خیلی تشبیح کرده حافظ به نفس نفس باد سبا مشک پشان خواهد روز همون جوری که نفس آدم میاد بیرون مثل باد میوزه و زیدن باد رو به این نفس دم هم همون نفس حالا باد سباکی میاد اگر از سر زلف محشوق گزرکنش کام کنه بوی خوش سر زلف او رو پراکنده میکن در همه جون یعنی از وجود محشوق قبر میده به همه میگه برای این که این کارو نکنه سبا تا آدم از شام سر زلف تو سر زلف رو چرا شام یعنی شب تشبیه کرده خب زلف سیاهه شبیه سیاهی شب. ولی چون اون طرف سهر میاره با سبا گفته نیدم صحری نیست که نیست اینه که زلف هم به شام تشبیه کردی تا تناسب لفظی به حد علا رعایت بشه تا آدم از شام سر زلطه تو هر جا نزند با سبا گفت و شنیدم سهری نیست که میزید بعد که از شر به قرب میوزید مهمولیم البته این حرفا محلی دیگه طبعا مثلا در شیره از اینجا بگیم بازی که از شر رو خجاید خویی باید باشه سام باشه باید و عکسش هنی از غرب به اسمش دبوره باید اسمش دبوره و بایدی که از شمال به جمعه شمال اسمش به جز سبا و شمال هم کس مال خود خاجه شمال باد شمال خبر باش ای نسیم شمال که به ما میرسد زمان رسیم پس سبا شد باد از شهر بفرد تا تادم از شام سر زلف تو هر جا نزند زلف رو هم باید بگم که با گیسو فرد دارد زلف اون قسمتی از موز که در قسمت قدامی چهره در این کناره ها و روی پیشانی میگذاشتن و ییسو اون قسمت به پشتی ازداره زلف محبوطه به روز یک کلمه هم بریم زلفین به اصلت این کلمه رو گرفتم بعدی زلف رو ساختن این زولفینه اولا فین نیست مدتی خیال بیکردم که این فینه و این اشتبالات رو قزدینی کرده که پتنک زولفینه یعنی دو زولف یعنی این دو طرف نیست اولا این زولفینه زولفین و زورفین هر دشمانی حلقه است اون چفتای قدیم در اگر دیده باشین یک چفت بود یک حلقه بود که میکردن تو بعد یک سیخی میخی که توش اون حلقه رو میگهن زولفین زولفین زولفین و زولفین از خیلی قدیم هم این بوده است. اون که دار اه اه بوده از ای که رو درده میگهتم زولفین در یه شعری داره بابایی نمیگم رو یکی به نظرم بیه از شعرهای خیلی متقدم میگه به آب گرم در منده از پایم تو در زول در دار انگوشت آذار گورم یعنی کامو هندو نکیل آذار پیدوس اسم شخص این آذار شخصی دیروز آذارت می آهی این آذارت می آهی از, از معاصران یعقوب و آمر پردازان و پسران بیش از سه پلی ما در زیرکی که رو او به دیوانگی زده بود برای اینکه بسیاری حرفا رو بخونه بزنه. و اغلب هم در مواضع حساس اونجایی که باید حرفی رو بزنه میزد. ولی منقول است که این اثر ابن یحیی را چه دستی کرده بود که حمزه بن سعد جوچی میاد این موندو. هر چمایی بیشش بیرون نشده بود و بعدم کندوکاف که بکنن باد بکنن انگشتش خون میاد اونجا بیشترو موندو خلاصه با مکافات و بدبختی رو مثلا صابون بزنم من نمیدونم فاره بکنم و بسیار رو یا نمیدونم گشات کنم همون هر و حجات هر نمیدونم به یه ترتیبی با بدبختی بعد از ساعتها گرفتادی نه انگوش دینیم چند دیدون بعد میگه که دوباره افر انگوش کردون تو خبتن <تصفح> مرد که دیونتو همچی کردی گفتن هیچی میخواستم بینم که هر وقت گشات شدیه نه با <تصفح> و این زرگول مثال شد زولتین در یعنی اون حلقه در از زولف و زولتین اون قسمت است که حلقه هم میکردن گاهی کنار چهره برای زینت او بوده زولف پادم از شام سر زولفتو هر جان از امت. با سبا گفت و شنیدم سهری نیست. نیست من از این طالع شویده به رنجم میگه هرچه هست از قامت ناس این عین اومده هرچه هست از قامت ناساس بی اندام ماست ورنه تشریف تو بر بالای کسی که ذات حق اگر که اه, چیزی داده درست داده اگر ما گرفتاری داریم تقصیر خودمون. میگه من از بخت خودم در رنج. وگرنه هیچ کسه دیگر نیست که از سر کوی تو بحرمند نباشی من از این طال شوریده برنجم ورنه بحرمند از سر کوی یا دیگری نیست, دیگر نیست. یعنی همه از سر کوی تو بحرمندم این پیراست که این ارفانه هدی کسی به معشوقش چیزی نمیگه که امکان نداره کسی برای معشوقش بگید که هیچ, هیچ کسی نیست از سر کوی تو بحرمند از من یکین از کنم که من از این طاله شویده برنجم ورنه بحرمند از خرق بودت دگری نیست که نیست از حیای لب شیرین تو ای چشم نوچ گرد آب و عرق اکنون شکری نیست, نیست اولا گرد و عرق این هم نرشده میشه این نیستن تجنیس خط این دو تا مثل هم نوشته میشه منتها یه نقطه فاصله کوئی نقطرم نداره مثلا فرض کنید که اهر و عرق اگه باشه دیگه نقطه اش هم فاره این به هر این میشه بیان تجنیس فعت انواع اقسام تجنیس داریم این تجنیس فعت این این یک دو ضمن که نوش به معنی شیرین در زبون ارمنی اسم شیرین زن خسرو پرویز هست آنوش شیرین هم بگن آنوش شیرین پس نوش تا شیرین هر داستان خسرو و شیرین زن دیگری به نام شکر هم هست شکر اسمهانی یه شب یه خسروه میگی بریم حلواتی میره بو موزن که اسفحان یه زنی هست شکرنام که این خیلی وسایل ششت خوب فراهم میکنه و میره اونجا خسروه بو خالا بعد از ماجره هایی که من حالا وقتشو ندارم که بس بکنم میاد تو داخت خوشت زد چه هم بید تو دیگه بچه های کدو من هستن ما هم حمید عروسی ندید. پشت دریش می خونه. هر وقت اومدی تو. عرض کنم که میگه که بریم الباتی و اونا بعد میگن شیرا میره خونه شکر و ما سال بعدم میره اونها و از مدتی بعد خودش به عمل که خانم شکر اصفهانی خودش دوشیزه است بعد مهر دوشیزگی باقیه و میگه که من حقیقت چیمی که مراجعه می‌کنم خونه من من به ازمارای اینا خوب بلدم مهمون همون رو کاملاً مخص می‌کنم وقتی که کنیم در وقت خواب تنیزان دارم شبیه خودم آرز می‌شستم و من تا حالا هیچ مردی به من دستش نریست و خصو فوراً اینه می‌گی ولی بعد دیگه در داستان خصوشینی صحبتی از این شکر نیست حالا مسائل بگذاریم به هر حال شکر هم اسم زن دیگری هست در داستان خصوشیرین هست, هست شیرین هم هست نوش هم به معنی شیرینیه از حیای لب شیرین تو ای اسم نوش خرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست اینم مال این اومد نوش به معنی شیرینی مایه شکره که برزن تو آب فورا قرف آب و عرق میشه دیگه بلی هم آب داره هم عرق عرق برای برای اینکه نوش درست میشه مفتاری عرق معطر این بیت یه داره پیچوخم خواب چشم که برای منت خواب که در توست این این اون مسرهای درمون قجاب بیت اول بیت اول اون شان از پارتو رومیت nazar نیست که نیست مننت خاک درت بر پسری نیست که نیست درسته که مننت خاک بر تو بر هستی نیست اینجا کینه میگه میگه آ که بر اون بر اون چه اش مننت خاک در تو زیر مننت اون خاک دری نیست, که نیست یعنی من چون مننت خاک در تو بر چشم منه خاک همه درهای دیگه زیر مننت این چشم من هستن. آب آو بچشمم که برو مننت خاک در توست زیر صد مننت او خاک دری نیست که نیست یعنی همه خاک همه درها به دلیل اینکه آب چشم منه مرهون خاکی در تو شده همه درهایی دو همه خاک درهایی دو منت این آب چشم من و زیر منت این آب و چشم من آب و چشم من که بر او منت خاک در توست زیر فت منت او خاک دری نیست که نیست همه فهمیده این نوعی کنی همچنین پشتکوهای رو داره ها اگر لازم یک خود دیست دوزیدم اگر نه بیدا ها میگه که آب چشمان عزیز شده چرا؟ کاری که مننت خاک درトルکوشه. این مال مصعب. این این آب چشما. اره، چشمه دیگه این این حال چیزه دیگه، حال تعریف فوق العاده هست مثل اینکه بگیم قدم به چشما بذاریم قدم که به چشم نمیزارم. این خاک در تو من منت خاک در تو رو به چشمم گرفتم چشم من منت په زیر خاک در تو اسم میگه منت خاک درت بر بسر نیست مثل همه چشما منت په زیر منت خاک داره. تو چشم منم میگه چون زیر منت خاک در توست که معشوقی، که ذات حقی، که کمال مطلقی این تون من منت پذیر او شدم همه اون کسانی بگی منت پذیر منه دوشتم چه او؟ بروشم چه بروشم. از وجودم قدری نامونشان هست که هست اینکه اینقدر فقط از وجود من نامونشانی هست که میشه گفت هست اینقدر اینکه نمیشه گفت مورده نمیشه گفت نیست اینقدر فقط از وجود من نامونشان مونده که میشه گفت هست در از ضعف در آنجا اثری نیست یعنی <تصفيق> هر نوع اثر ضعف رو که بخوای در وجود من هست. اینقدر هست که هنوز نه یک نقص هنوز هست شعرها گاهی این ضعف فوقلاده رو به صورتهایی <تصفيق> گفتن که وقتی به نظر میاد خودت نمیان خنده‌دار بگم میاد یا, یا فوق‌العاده اغراق میاد میگه چنان ضعیف شدم از قومت من درویش که سایه را نتوانم کشید از پیپیش که اصلا نمیز صدامو یا مثلا میگه که ثابی بر سر بالین من آهسته در بنشین که ترسم باد دامانت از بستر من اندازد نشان فوق فوقولاد سعدی هم که میگه که اون, اون زحف رو نمیگه ولی میگه پیرهن پیرهن میبدرم دم بدم از قایت شو که وجودم همه اون گشت و من این پیرهن میگه من همه پیرهن هیچی دیگه نیست کش باقی هرچه هست اونست. من این شو از وجودم قدری نامونشان هست که هست این هست لفم که باید به تکیه کامل خونده بشه یعنی که وجود داره تهنوز نمارجی فقط همینقدر یه یعنی از وجود انقدر هست که میتونیم بگیم هنوز هست ورنه از ظرف در آنجا اثری نیست که نیست تیر در باویه عشق تو روباه هایی اونیست که بسیار معروفه به ترسوی و احتیاط و پیش کردن راههای بسیار به اون قصره که صد بار به دوستان گفتن برای اون بار صدیفان هم بگم گفتن که از روباه پرسیدن که تو راه در رفتن از دست سگ داری چند تا راه داری برای در رفتن از سگ دست سگ خیلی شاید هزار تا ولی بهترینش اینه که من رو, من رو بینم نه اومده من رو روباه معروف به این احتیاطکاری و پنهانکاری و به همه همون ترس میسی و شیر به عکس که شیر حمله میکنه. میگه شیر در بیابان عشق تو تبدیل میشه به روباه آه از این راه به دروه خطری ای نیست اینیست که این را که در او تمام خطرها وجود. خطر رو باید بگم که دو معنی داره یکی بزرگی یکی هم خطر و اینا یا یعنی اگه کتاب فیل دنه خونده باشن دوستان یا توی دبیرستان به زور تو حلقشون فروی کرده باشن تو هم بابا اول به این بیت برخوردن می‌گه از خطر خیل زد خطر زیرا که سود ده چهل بر نوابندت گر به درصد از خطر بازارگان با. یعنی ای حاجر از خطر به ترسی که سود ده چهل یعنی سود 400 درصد نمیگرید که خطر یعنی بزرگی از ریسک کردن به وجود میاد از خطر خیزد خطر یعنی از تحمل خطر و ریسک کردن که آدم تونه به جایی برسه همه اینکه اگه تاجر از خطر به ترس که سود 400 درصد نهیم باری اینجا همه خطر دوبامرانی هم خطر معنی معمولی و در راه سلوک خیلی خیلی صوفیه گفتن که سالک کسی قدم بر این راه می با انواع و اقسام گرفتاری‌ها ها رو برو و به باعانه های مختلف و به انواع مختلف ممکن از این راه منحره در رعه عشق مال حافظی در رعه عشق آن سوی فنا خطر است. این بعد از این که فنا شدی ساعت تا خطر دیگه حاله هست در رعه عشق آن سوی فنا خطر است. تا نگویی که چو آمدن به سلامت آمد رستن. فکر کنی مردی تموم شد هی دوش بیماغری چشم تو ببرد از دستم که از لطف لبت صورت جان می بستم عشق من باخت تو امروزی نیست دیرگاهی که از این جام حلابی مستم از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از پاوی طلب من شستن. بعد این بید خیلی قشنگه. بعد از اینم چقم از تیر کجنداز حسول چون به محبوب و کمان هر روی خود پی بستم سنمی لشگریم قارت دل کرد و برم آه اگر آقفت شا نگیرد دستم اون بیتم که خوندم رتبت دانش آفز رتبت دانش آفز به فلک پر شده بود در بیماقی شمشافت بلند هست همیشه معشوق بلند بلند دوست داشتی سقری داشت که خودش هم بلند بوده به روز واقعه تا بکماز سر کنید که به داغ بلند بالا آدم تا خودش قدش بلند نباشه معشوق بلند قد نمیخواد که آدمی که نمیزونم قدش نختیره پای باشه معشوق شاسی بلند میخواد برای چی؟ و ارز کنم که این, این مسئله خطرات راه راه سلوچ و راه هر فرکودم اینا ممکنه آدم رو از راه به کلی دور بیندازه و به کلی گمراه بکنه اینا ها که خیلی زیاده و بارها باز گفته که به همین دلیل باید یک کسی راه نما باشه گذار و هست خضر راهی کو. ما با تاپش محرومی آب ما ببرد یعنی آب برون این هم شیر در بادیه عشق طور رو باغ شود آه از این را. که در خطری نیست مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز باز همون مسئله پوشیدن راز است که مفصل دربارش حرف زد مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راست ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست یعنی همه خبر در مجلس رندان هست همه چی رو میدونن اما نباید که بگن مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راست ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست حاجب رند هم واسه اون رو در سنهوزه عرض دادم مجدداً باید روزخون پشمکال روزه رو از سر ببیرم رند در روزگار قطیم برانی آدم های بی سر و پا آدم های هیچ لومپن، لومپن، درست در داستان حسنک وزیر به این حقیق می نیمسی که وقتی حسنک و سنگسار قراشون دارش دادن قراشو سنگسارش کنن میگه مشت رند را سیم دادن که بیان به حسنه که کنید برای اینکه اون مشتی رند دوران حسنه که وزیر تصور کنید امروز فکر کنید که وقتی کسی رو سعیم سار چه کسانی و حسنی اون رو سعیم میشن همونجور آدم ها اینارو گفتن رند هر دوره مولانا رند بیشتر به حالوانا و قد داره کشم مولانا رند بیشتر به پهلوان ها و قدرکش ها و لوتی و قیار و جوان مردا و اینا میبودن در مناغب الارفین افلاکی که در احوالات مولانا رسزه صد بار شاد بیشتر کلمه رند به کار رفته به این حافظ تو دیوان خودش بخشون که رند مرادش ای آدمی است مثل خودش رند سوز را با مسلحت بینی چده کار ملت هستم که تدبیه تنگل با بود فرصت چمرترید به رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاری نیست به جام که خودش میگه رندم آشق و رند و نظربازم و میگویم باش تا بدانی که به چندین هنر آهاست رندی رو جزه هنر خود باز میگه این نیست که حافظ را رندی شد از خاطر که این خواهده قسمت تا روز پس نیم باشه بنابراین رند در, در دیوان حافظ که اول بار این معنی به کار رفته از معنی بعد تمتم برگشته معنی خود پیدا کرده اول بار در دیوان حافظه که... که این معنی به کار رفته و در مجلس رندان یعنی مجلس کسانی که امثال حافظ در اشترکت مسلحت نیست که از پرده برون افتاد راز در نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست همه خبرها هست غیر از این نکته که این احتمال داره که این غزال رو اینجا رو اشاره شخصی کرده معمولا چون تای غزالاش حافظ بایی گوشه به اشخاص میزنه غیر از این نکته که حافظ تو ناخشنوده است خشنود معنی راضی. خرسند معنی قانه هیچ دونیش معنی خوشحال نیست. ما معمولا الان خوشنود و خرسند رو همدیگه خوشحال می‌گیم اصلاً نیست. خرسند یعنی قانع، خوشنودم یعنی راضی. حافظ میگه در این دنیا اگر عیسیست با درویش است یعنی درویش قانع در این دنیا اگر عیسیست با درویش خرسند است. خدا یا منعم گردان به در بیشیدی و <تصفيق> خوشنود به معنی رازیست بگیر از این نکته که حافظتون تو ناخوشنوده یعنی از تو است، در صحابهای وجودت هنری نیست تو من از از که یه ساعت رو دارم نفس میزنم میذاریم نفس بازتونم ما پیر این در رفتی میشیم که هفش در دیگه یه ازازه بتیم که نفس راضی کنیم در کنیم بیا نه ببند حاصل کارگه خوبون و مکان این همه نیست باده که از باب جهان این همه نیست از دل و جان شرف صحبت جانان سردد همه آن هست وگرنی دل و, گل و این همه منت سطره و توبا ز سایه نکش که چو خوش بنگریش سر برواند این همه نیست دولت آن که بیخون دل افتست به کنار و با سعی, و و و سعی عمل ور نه با سعی عمل بابهجنان این همه نیست پنج روزی که در این مرحله مهلق دارید خوش پیرا سال زمانی که زمان این همه نیست بر لب بحث فنا ای منی این اشتیاق دان که ذلح تا به این همه نیست در مندی من سوخته زار نزار، ظاهرا حاجت تدلیل و بیان این همه نیست زاهدی من مشو از بازی قیر از زن ها زاهدی من مشو از بازی قیر زنها، زن ها زاهدی من مشو از بازی قیر زنها زن ها که ره استود تا دیر مغان این همه نیست نامحافظ رغم نیپ پدیرو ولی پیش زندان رغم استود زیان این همه نیپ فرمان <تصفيق> این همین نیست باید تکیه بشین همه نیست یعنی هیچی نیست حاصل کارگر کون و مکان این همه نیست با ده که اسباب جهان این همه از دلو جان جرفت تو باید دانان قراز است نرحال کارگر کون و مکان یعنی این عالم کون یعنی بودن و مکان یعنی محل بودن ما خود ما در ذهنمون هیچ چیزی نمی گنجه مگر دو شرط داشته بشه یکی زمان یکی مکان ما هیچ هیچی رو بیرون از زمان و بیرون از مکان اصلا نمیتونه تصور. یعنی ذهن ما آماده نیست همون جوری که مثلا چشم ما نور رو از طول موجی که نور قرمز رو تشکیل میده مثلا چهار میکرونه چهار هزاران میکرون مثلا خانم بهتر میدونه من درسته میدونم تا مثلا هش, هزار هش هزاران میکرون که نور بنفشه، این وسط رو میبین باقیش است ما تشخیص میدینیم صفحه اکلاسی رو متاثر میکنه عکس میگیریم باشه اکسری یه مثلا نبینیمش آهن وقتی که بوداخته شد یعنی رسید درجه حالتش به 600 ما رنگ قرمز میدیم پیش از اون اینو آهنس یا داق داغ داغه بهش حس میکنه که این داره انباج ازش متساعد میشه ولی ما نبینیم انباج هستیم یعنی اون رنگ هستیم این زیر قرمز یا اون یکی اون طرف بنفش ماورها بنفش که به آب بتابونن تمام موجودات زنده تو اونها می که آفتاب زدیدی پیده نا در نتیجه همون نور ماورها بنفش، گلترابیوله که توی آفتاب هست حال شما هم مخوره. ولی نور ماورها بنفش تو اتاق بتابند هیچ چیز دیگه نباشد شما هیچی نبینید تاریکه فقط به تو حال تو ما. اینکه که چشم ما توانایی دیدن یه مقداری هنواج و نورانی رو نداری نه هستن ما نمیدونی همینجورم ذهن ما نمیتونه چیزی رو بیرون از زمان و بیرون از مکان تصفر میگیم کوره زمین کی پیدا شد الان کجاست جواب اینه که دو خورشید داره میگرده بین مریخ و زورت فاصله شمه از که چهار ملیون ساید ده ملیون صد چونت... بدون زمان، بدون مکان ما چیزی رو نمیتونیم مکان یعنی محل بودن کونم <coughs> یعنی بودن میگه این کارگاه کون و مکان که به یک کلمه هم به حضرت حق گفت قال له کن های کون یعنی باش از مستر کون به معنی بودن کانه یعنی بود یکونو یعنی خواهد بود کون فیل عمر شد یعنی باش میگه ما به عالم گفتیم کون فیع کون پس بود از کلمه عمر،, عمر کون ساخته شد میگه این کارگاه کون و حاصلش اینقدر چیز نیست برای اینکه اصلا اسباب جهان چیز قابلی نیست این دنیا وقتی که برش زندگی کنه کم خودش هم اسیر زنجیر زمان و مکانه حاصل این چیزی نیست مراد از باده هم تا ایست که گفتم با امارها این حال جزده است که در راه سلوک به عارف دست میده یعنی اولین قدم است که بسید ور میداره امیدوارم کتاب مرسال عباد بتونید بخونید. اونجا اون رو میگه خود اون پیر که وقتی که شروع کرد به کارو شروع کرد به اون احوالات و زیر نظر پیر شروع کرد به رفتن راه طریقت بعد یه چیزا رو چشمش میبینه، انماری میبینه، مناظری میبینه، چیزایی میبینه که این نشانه رسید و این حال جذبه و حال خلسه فگه. اون حال رو اهل عرفان تعبیر میکنن به بادی میگه آپف ارباب معرفتی گهی مست خوانندشان و گه خوشیار از مغ و دیر و شاهد و ساوی وزمه و نمدم رود و کچی و زننار قصده ایشان که به ایما گی خوانندس ها تیبریگر به رازشان دانی که همین است بر این اصرار که یکی هست و هیچ نیست که زو وحته اولا اله الله. این می اشاره به اون حال جذبه است که عارف یا سالک در راه سلود به امیرسیمی که اصل مطلب از دل جان شرف صحبت جانان قرار است صحبت یعنی دوستی برای بله فاقر مصاحبت رو الان میکیم در مصاحبت آقای شعابی رفتیم به فلان جان یعنی در پایشون ایشون در دوستی در, در حلوی هم خود روابط دوستانه با هم رب ما در زبون فارسی مصاحبه و مصاحبات هر دو یکیه مصاحبات این اینترون گرفتیم مصاحبت روانی دوستی رفاقت این نیست که این خب پارسی درست کردن من نمیگهم قلطی الان به چار میبریم ولی در حصول این هر دون یکی یا مثلا میگه که یه میگه میکرم این کار من چه تو شد میکرم بیداری پاوزینی مراجعه کنیم این یه،, این یه معنیه من یا آه فلان از،, از سفر اروپا مراجعت کردن مراجعه یه معنی داریم مراجعت یه معنیه دوتاش یکی ما در فارسی دوتا معنی برش درستیم حال صحبت به معنی دوستی و رفاقت و صاحب به هم صاحب که در سعدیمیات صاحب به دوست میگه که دیلو جان اصلا برای اینه که بتونه به صحبت جانان برسه بتونه وجود جانان رو کنه با اون تصوری که داشتن صوفیه که محشوقشون حضرت حقه و منظور از این خلقت پیوستن به حقه با کون تو چانز ان محسی جان فاحبدت ان اورت فطلت که ای اورا من نگفتم یا نگفتم اگرم گفتم دوباره میگم چه چی خاطری سرم می‌ریزم این یه حدیثی حدیث هست از قول خداوند فرموده است که من یه گنجی بودم پنهان دوست داشتم که شناخته بشی مردم رو آفریدم تا شنا این کار رو فرشتگان نمیتونستن بکنی برای که فرشته عشق نداشت فرشته عشق نداند که چیم سه قسطه مخواه به خواه جام و شراب و که آدم شد فرشت که یکرد دو هشتید ملک عشق نداشت این آتش که از این غیرات رو بر آدم زد عروفه که خدا میخواست که امانت رو ازم آیه قرآنه میگه امانت رو عرضه کردیم به آسمان ها و زمین و کوه ها امتناع کردن از اینکه اون امانت رو ببرن و از او ترسیدن و انسان اون رو امانت رو برای که اون زلون و جهوله در حقیقت یعنی بدبیله است آدم ریسکیه این امانت که به همین صورت امانت که قرآن آمده و این آیهی که من ترجمه شو گفتم ایدن در بیت حافظ ترجمه شده و آسمان بار امانت نتوانست کشید قرآن فعال به نام من دیوانه زدن این امانت همون خلافت و جانشینی خواست در روی زمین برای که باز حدیث دیگری هست که این الله خلق آدمه علا صورته خداوند آدم رو به صورت خودش کرد. پس این آدم قایت مقصودش چیه؟ قایت مقصودش اینه که خدا رو بشناسه و به خدا برسه و به حق بفیونده چون از او برخواسته چون روحش پرتوی از او خداوند روح خودش رو در انسان دمیده خداوند انسان رو جانشین خودش کرده در خلقه ولی حالا خودمونی خودمونیم الان کسی که میتونیم بگیم جانشین حده حالا با هر صورت که بخوایی تک کنید مشترسن بقال و مشبرج لبویی و سیاسفر و که نیست پاستور و انشتین و عرستو و بو علی و اگر امانتی هست بشه ایناست بنابراین انسان قایت مقصودش اینه که اونجور بشه اگه شد رسیده اگر نه که بسیاری از آدم ها هستن که اثر وجودشون در دنیا از اثر وجودی یه دونه گاب بیشتر نیست کمتر هست بیشتر گاهی زررشون بیشتر نفعشون کم این چیزی نیست کسی نیست این در اون راه که باید نرفته اصلا حافظ با اینا فر نداره میگه دلو جانو دادن که به شرف صحبت جانان برسه اگر نباشه دلو جان به چه از دل و جان شرف صحبت جامل قرار از همه آن است و گرمی این نی با یای مجهوله یای مجهول معروف هم که نگفت ما یار قدیم دو جور واق داشتیم و دو جور یه یکیش میگفتن مجهول و یکیش رو میگفتن معروف واق مجهول یای مجهول واب معروف یای محروف این مال قدیم واب و یای مجهول وابش به صورت زنمه کشیده گفته می شود. مثلا روز رو روز یا شور نمکدار رو می شور واب یای مجمول به صورت کشیده یا کسره ی کشید تلفاز میکرد شیر درونده رو نزفتن شیر این شیره ای و هنوز در پاکستان که هست من خودم بودم و دیدم یعنی اونجا لازم نیست نقل قول کنم در افغانستان بعضی دعا تا فراستان هنوز هست این باب و یای باب مجمول و یای مجمول به کار میگرد اون بنابراین این, این که مولانا میگه که کار پاکان را غیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر الان هر تا شیر رو یعنی اون مایه سفید رنگ و, و اون حیوان در رنده رو هر دو رو یه جور تلف خود ولی احتمالا خور مولانا شعرش رو اینجور میخونده کار پاکان را غیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر شر یعنی اون ایوان در رنده شیر یعنی اون مایه سفید رنگ و میگه در نوشتن یعنی در گفتن یکی نیستن گرچه باشد در نوشتن شیر این نون رو یکه میذارن که حالا میخونین نی یا جایه مجبوله یعنی در قدیم این طرح میشه ده نه و نه همون نه برای اینکه بسیاری از این کلمات یه خودی یک کس را ن رشی نه رو با یه می نوشتن دالباه های می نوشتن همونه پس این خونده میشه در حقیقت خونده میشه از دلوجان جان چرف صحبت جانان همه آن است آنست وگر نه دلوجان این این همینست اما ما امروز چون یه مجهور رو تغفظ نمی کنیم به این صورت می گیم وگر نی اما نه نباید بگیم نه اونست که می زنه اگر هم دلیل بخواهیم دلیلم هم دارم یک قذلی هستی بند سهدی میگه ای همچو لبان تو شکر نی بادام تو چشمت پسر نی هم خب ممکنه من بینی تو اینا ممکن ممکنه نیم خوند. ای همچو لبان تو شکر نی بادام تو چشمت پسر نی درست ولی این بهتش باش کنید میگه پیران پیران جهان مشان ندازن چون تو پسری به هیچ قرنی این هم میشه قرنی این میشه که گفت بنابراین مجبوریم اون شکرنی و خبرنی و سمر چندین شجر وفا نشاندن و از وصل تو ذره این سمرنی این همینی دلین که با قرنی کافی شد گاهی خوندنه بعضی از کلمات ما نمیدونیم چجوریه اینا به وسیله قرار گرفتن در قافیه شعره که میتونیم درک کنیم که این در قدیم چجوری کنیم یه شاعری هست اسمش اینجوره این چی بله اسم این آقا سراجدین قوامبریه سراجدین قوامبریه تدلیلشینی که یه جاهایی از شعرش که اگه بکنون شعر خواهد باید بنابراین یعینه این سراجدینی کنید ولی بسیار از این ها رو تو کتاب ها دیرگرارشون نذاشتن، اون این بعد به زلائلی به قرائمی به این ترتیبیدیم به هر حال این نیه از بلوجان شرط صحبت جاهنان قلزه هست همه آن است. در بعضی نسخه هست قلزین هست در, در... در نسخه قلزینی هست قلزین هست در دوتا نسخه دیم هست همه این هست ولی در نسخه باقی نسخه های خان لبیت حقش دهت هست،, هست همه آن هست وگر نی دلو این همین اید منت صدره و توبا زد پیستایه مکه اید اسم صدره و اسم توبا هر دو در قرآن هاید صدره درست و صدر درست و صدر امیدوارم همه دوستان صدر و دیه باشیم گرد فرزنگیست که کار کرده و کرده بر یک درخت که سنام درخت این خاصیت جذب چرکی یعنی وقتی مثلا دزنم به سر مثل صابون کت میکنه من چرکی موری سر باشی میشه من یادمه که سال ۲۷ نفصولم به شیراز وقتی به همم کارگر همم که آمند دوما بله کنم با گل بشیرم یا با کنار یا با دا. گل، گل فرشوره. اونم گلیست که چردی رو جزد میکنه و میمالیدم به سر چردیم مو رو میبود و چکی توی شاهنامه هست که میگه که فرستادن دنبال رستن وقتی سهراب آمده بود کابوس فرستاد دنبال رستن رو بهش گفت که گر گل به سرداری اون نشوید یمای یعنی گل بودشی سر داشت بشودی نشود، آشیو. یعنی فوری. یعنی اینکه حالا آب در دست داری نخور، همونطور که گر گل, سرداری اکنون نشو. گل گل بود سر داری. اگر گل گل سر و همون گل بوده که زنهاي آبستان دیار میکردن، میخوردن، و بعضی مرد هم عادت گل خوردن داشتن و این همچنین از هزار سال پیش ادامه پیدا کرده تا حتی پدر یکی از روح‌قایم من عادت گل خوردن به زحمتی ترکی از این گل خوش شماید و خب گل که جاش توی مهده نیست که زارجون مرز ایجاد میکرد ولی خب طاقتنان چاره نشکن طاقتنان نشکن نیخورد یکی گله که کناره کنار اسم صدری درخت عظیم است، مال نواهی گرم و میوهی دارد خوچیکتر از یه دونه آلوزرد طبیعا نصف او میوش هم فراکی ولی مهمتر از همه این است که این درخت در جاهای کم هست بسیار قوی میشه و بزرگ و سایه‌افکن. افکن ساعتها روستان زیر سایش میتونن استراد. در جاهایی که بیابونی که آفتاب داغون میکنه آدم در بیابونای فارس اینا زیاده است به همین دلیل هم در یکی از وسایلی سرشستم تو هموای اونی گرد سر. بز. بز در حال عرض کنم که این درخت خیلی زیبای قشنگ است و در عربستون کفیر بدبخت عربستون منطقه آرزو این بودی که یه درخت سر باشه دیگه به همین دلیل تصور یه درخت ستری رو کردن در بهشت نام سدرت المنتقه صدرت المنتحا صدره وقتی که میگن با صدر فرقش اینه این علامات نیست نیس. علامات وحدتی ضرب یعنی زدن ضربه یعنی یه دونه زدن اینو میگن هیه مره هی که دلائه بر وحدت صدره یعنی یه تک دره. سدره صلمنده یعنی درخت سدر که در انتهای بهشت. درخت دیگری هم بوده به نام توبا که تو اون درختی که مخصوص بهشت دی، زمین نیست. سعدی میگه که خدا هم با به دیدار دوستان ماست. کسی بهشت نزد به دوستان ما درخت و وقت سیمین فرد مگر توباست که هیچ سر ندیدم که این بدان ما خجاست آن که به انگوشت می نمود کذب رو باونه تا انگوشت برد به ما اوتی که بوسه گرفتن به وقت خنده از او چه جونی می بوتی که بوسه گرفتن به وقت خنده از او به برگرفتن مهر گلافدان ما جفا مکن که نماند جهان و هرچی در وفا و صحبت یارا مهربان ما ارز کنم که توبا میگفتن است در بهشت که هر چیزی که آدمی آرزو کنه بر این درخت ظاهر میخواد مرغ پخته باشه میخواد انواع نیوجات باشه گفت مقام میگه درخت گردکان با این بزرگی درخت خربوزه الله آمد باشه میخواد گردکان باشه، میخواد خربوزه باشه که درست توبا هست علاوه بر این یه شغلی که هم این توبا داره اینه که بچه های اندک سالی که شیخار هستن و میمیرن و حباً چون گناه نکردن میرن به بهشت از درخت توبا شیر میخورن تا که بزرگ شن این درخت توبا وضعیت های بفصلی داره در چیز در بهشت و توبا اصلاً و تیب و تیب همش یعنی پاکیزگی تو یعنی درخت بسیار پاکیز. ولی به هر حال دو تا درخت ها هیچ قصری و هیچ خانه‌ای در بهشت نیست که یک شاخه‌ درخت تو وام جنوش با عزم کنم که صدره و تو با دو تا درخت بسیار معروف بهشتن میگه برای سایه مننت اینا رو منت صدر و تو واضفه یه سایه مکشکه چه خوشبنگریه ای سرز روان این همه اصلا اصلا هیچی غیر از خدا اصلا حساب نیست که تو به حسابش بیای سعدی میگه گوین تمنایی از دوست بکن سعدی از دوست نخواهم کرد جز دوست تمنا خود شنس فکر بهش توی تو، فکر سایه ی صدر و توبایی اگه باشه که به نظری مننت صدر و باز زفه ی مکش که خوش خوشبنگریه است بر بروان این همه نیست ویده بعدی هست دولت آن هست که بی خونه دل افتاد به کنار تو نصحایی است بی خونه دل آید به کنار افتد به نظر من خیلی بهتره از دو و چهار و شیش و هشت از ده نسخه معروم دکر دو تا نسخهش یکیش نسخه غزمی است و یکیش نسخه دیگه است آید به کنار دیگه همه افتد بکنه آید به که آمدن کاشف از غزت دارده قبلیست یعنی یکیسی باید تصمیم بگیره بیار بعد بیار تنی افتادن این طور نیست تصادفی و فوری وقتی که میگه که علما دولت اون که بدون زحمت اگر نه هر کی زحمت بی کی بلاخره مهم نیست میتونه میتونه به دست بیاره چی میگه اگر بدون زحمت رسید اون اون دولت این حالا اشاره به یک نکته خیلی مهم میست و او باز بر اساس اعتقاد مذهبی اون روز اهل سنت اعتقاد اشاعره است اینا معتقد بودن که سعادت و شغاوت افراد به دست خداست به هیچ تأثیری نماز و روزه و عمل کرده کسی در سعید بودن یا شبه بودنش ندارد این فقط ارازه ذات است از سعید و سعیدون تیبتن امه و شبیه و شبیهون تیبتن امه خوشبخت در مادر شکم مادرش خوشبخته و بدبخت در شکم مادرش بدبخته اینه با این تقریب سعدی گفته که اگر خدای نباشد ای خوشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد گناه نبود و عبادت نبود و بر سر خرق نوشته بود که این مقبل است و آن مردود چون اینطوریه بنابراین میگه توفیق اونست که ذات حق بدون هیچ کوچه با آدم بده و اگر نه افتادن زحمت بکشه بهش به دست بردن فکر کار مشکلی نیست و عرضشی نداری و در این کار و طریقت هم یه جماعتی بودن که بهشون بشون مجذوب سالک یعنی اول جازبه یه اینو کشیده، بعد اومده تو این راه این از اون اول ذات حق اون لطفی رو که باید در حقوق کرده باشه، کرده این اجاره حافظ به این کسانیست که حالت مجذوب سالک دارن یه دولت هست که بی خونده لفتد به کنار ورنه با سعی عمل عمل اینجا به معنی عبادت و نماز و تعاو و کارهایی هست برای رسیدن به بهشت ورنه با سعی عمل با جنان این همه نیست جنان به معنی بهشت و هم جنت اصل معنیش جایی که از نظر آدمی پنهان جنو نوش میگن جن براین که میگن موجودیست که از چشم ها پنهانين پهشت رو میگن جنات یا جنان براین که از چشم ها پنهان سفر رو در عربی بهشم میگن جنن براین که آدم زیر سفر روی خودشو پنهان بواقه جنان یعنی بواقه که از نظرها پنهان یعنی بواقه طولتان است که بی خونده لفته به کنار ورنه باز فعی عمل با جنان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله محلتداری خوش پیاسای زمان که زمان این همه پنچی یعنی پا تو بزن سینه دیوار اشو از خوده. پس صحابیت روزو به قلب دست و باد بزنی هستیری و باد بزن و باد بزنی و پادم سنین دیوارده راز بشه. خیلی جا رازی باش به رزای حق حالت در مقام رضا باش بسی ادم در مقام رضا باشه و هرچی بیاد ع... از خیلی قدیم شاید 300 پیش اسلام افسانه های جنشید و سلیمان با هم قاطی است. قصه های سلیمان رو جنشید نسبت دادن، قصه های جنشید رو به سلیمان نسبت دادن. گویا اسمشون رو ده هم به کار بردن. عرض کنم که سلیمان اولا پادشاه قوم یهود. بار کتاب های دینی یهود سلیمان فقط پادشاه و اسلام خلعت پیغمبری هم به او ارزانی و نبی هم هست پیغمبر هم هست در, در اسلام و اون افثانه های در مدرسلیمان که که باد و جن و امس و مرغ و بحش و تیزدن به فرمانش بودند و زبان جالبانان رو میفهمید خود،, خود سلیمان که علم نامنطقه به ما تعلیم دادن یعنی از خدا تعلیم دادن منطقه تنین نطقه پرندگانه فرق نزده با کس قصه های سلیمان و جمشید با هم چیز شده مخلوط شده و به همین ولی چون عبر و باد به فرمان سلیمان بوده او رو به فرمان جمشید هم دانسته و علاوه جمشید در شاهنامه است هست که به هوا می رخته. نیگه به فرکیانی یکی تخت صافت که مایه به دو گوهرندر نشافت که چون خواستی دیو برداشتی، همیدون به عبرندر افراشتی چون خورشید تابان یان هوا نشسته بر صاحب فرمون رو با مران آفتاب تا من منکش شد بعد بودیه برای بدون پسی گوهر از تراندند بران روز را روز نو پراندن. روز نو نو روز روزی بوده است که دیوان تخت جمشید رو برداشتند و به هوا بودند و محضوز سعد یک جا از تخت جمشید عبر رو اراده میسانند بعد وقت بیچاره چیزی که دیر آدم آتیش میگیره واقعا سوراخی داشته این زندانش که زندان که چی یه حفرهی میکردن یه سراخی توی طبقهی میکردنش مثلا جاهای بدیشه باید یه این بوده اونجا که همه رابطه این به خارجی و این روزن زندان و خطاب میکنه به اون یه قصهی داره میگه این دل روزن زندان دیدگان را نعیم جاویی بی مهاق و کسوف ماه مهاق یعنی سیاه شدن ماه شبه آخر ماه که نیست میگن ماه در مهاقه یعنی روی تاریکش به طرف ماست کنیم نمیرمشی کسوف هم گرفتن خورشید. بی ماهو و کسوف دادی از آنجا شب مرا ماه و روز خورشید. این شب ماه من دوزم همه هم اگر دیو بینم از تو رواست که گذرگاه تخت جمشید دی. اینجا دیو و تخت جمشید عبر رو میگه که از جلو رو این روزن زندان رد میشه دی. هم اگر دیو بینم از تو روا که گذرگاه تخت جمشید به امید تو زنده برنه مرمرا کشته بود نه قدر زندگی هستون بدون عرض کنم که میگه گفتم این مست نده جم جام جهانبین بین بود خواجه جحافظ از این جام که گسروب یا جام جم تعبیرهای دیگه هم داره یکیش همین جام جهان یه بار هم نی بود جای دیگه توی اون سالها دلطلب جام جم از ما میکرد میگه که گفتم این جام بین به تو کی ای گفت آن روز که این کنفده مینا جام عالم بینم آورده به جای جام جهانبین با ده از توی همون ای که بر ما حت ختم مشکل نقاب انداختی یه به چه خوندم میگه با نوش از جام آلمبین که بر اولنگ جم من آورد جام عالم رو مال جام. باده اونش از جام بین که بر اون رنگ جمع شاهد مقصود را از روح نقاب اندار میگه گفتم این محند جمع جام جانبین از کو گفت افسوس آن دولت بیدار به خود وقت رو مساعد بودنش تو به بیداری تعبیر میکنن چه وقت و چه دولت سهرم دولت بیدار به بالی نام جای دیگری خاجه این فرماید به روی ما زن از ساخر که خوابا رو بینه بخت بیدار بخت بیدار یعنی بخت مساعد و موافق و بخت که بختش در خواب، یعنی بخت موافق و مساعد که افسوس که آن دولت بیدار بخو. اون روزگار بزرد سخن عشق نه آنست که آویت به زبان گفتن براتون بارها که گفتن که تصبب علم حال علم قال نیست تعمیر به کلام ازش نمیشه کرد سخن عشق نه که آویت به زبان ساق یا میده و کوتا کنی برای اینکه گفت شنافت حدیث عشق نیست گفت حدیث عشق چقدر بشنگرد میشیم هر وقت بخت... یک بیت سعدی آدم ودید نظیر نداری حدیث عشق ندامت کسی که در همه آمر به سر نکوشته باشد در سرها حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر باشد سر سراحی با سرش خوشتر از این بر بدن توانت بود دیگه نمیشه کسی اینجوری پاشتی هست قبای خوشتر از این بر بدن توانت بود بدن نیستد از این خوبتر قبایی نه ارز کنم که میگه که حدیث سر در سرارو رو با سرکوزدنه صحبت حرف زدن نیست سخن عشق نه است که آید به زبان ساق یا میده و کتاخ کنید گفت و شنو عشق حافظ چرا و صبر و دریا هنده به دریا افکندن چیزی به معنی صرف نظر کردن کامل از او و بارها مثل که در شعر حافظ آمده خیرت و صبر و انداخت به دریا یعنی در زم تناسب عشق رو و سیل رو با دریا و معنی دریا که در عدب فارسی در عدب قدیم فارسی دریا اصلا منی رودخونه است منتا رودخانه های بزرگتر من. و هنوز در پاکستان دریا که میگن مراد روتون دریای سند پردوسی در نهنگان برای آراز دریای نیل و در حال حاضر روتونه های سیهون جیهون اسم فارسیش سیر دریا و آمون دریا و عشق حافظ یعنی هشت اومد خرد و سبر و شخ برش عشق حافظ خرد و سبر به دریا اندار چه کنم سوزقمه اش نیارست نهو. نیارست از مصدر یارستن یارستن یارستن معنی کردم کردن این یارستن پل مازیش اشکالی نداره بچه های دانشتی تر کلاسون گفتم اما پوت آب هست پل مازیش یارستم یارستی یارست از یه توی نیست فعل مزارش میشه یارم یاری یارت یعنی جرات میکنم جرات میکنی جرات من پیش که بکنیم میشه نیارم از آورم هم میشه آرم آری آرت من که بکنیم میشه نیارم قنابراه نیارم. نیارم هم به عنی نیارم میاد هم به عنی جرات نمی اون وقت اننده است که باید به تاسصبح معنی بفهمه که این از ممس یارسن اومده یا از آوردن آور. چه کند سوز خش ار از این نه تا آخر به صورت ممسری ببینید دو تا در فارسی که میاد مثل همه زبون های هندو اروپایی اون هم همین جوره. دو تا فیل که گ هم میاد دو گمیش مستره نیاراست از نهفت دل ماضی نیست یعنی نیارست نهفتن نون مستری شبته خب این یکی رو فقط میتونیم بخونیم ازگمان نمیتونیم برسیم چیز بکنیم اینم قذل قشنگی خیلی قسم دارم که چرچنگ کلیمی حرف بزنم ولی خب حالا فعلا میخونیمش تا ببینیم بخون هم توکه پریچه نه، اونم تغثیر اینکش که ده، بود نه، و به عکس کارش که بردره نصفه های، های معتور پریچهره من طور که پریشهه که دوش از بر ما رفت آیا چه خطایی که از خطا رفت نارفت مرا از نظران نور جهان بیم که ما نیست که از دیده که مارف برشم نرفت از گذر آتش جلدون که دوش از صور دیگر بر ما رفت دوگ از رخه او از چشمه چشمم سیلا به سرش که و توزمان بلارم از سای فتادیم که آمد قمه در درست بموندیم چو از درست سوارم یه فتادش به دعا باز تبانیاب امیش که خوندم همه در کار دعا چه بندیم چون نبله نه اینجا در سعی چه کوشیم چو از کعب سفا رفت کعب دوستتره نیگو قبیل از سر هستت چو مراضی تیهاست که زنگ چود فانون شفا رفت ای دوست به پرسیدن حافظ قدمین زانتیش که بودن که از دار فنا رفت اینجا باز بازیگری عظیم با الفاظ و آوردن الفاظ به دومنی و سمعنی و این ناتوباتی که حافظی می هست از اون اول آن ترک که چهره که دوش از بر ما رفت ترک معشوق بارها گفتن در عدب خورس و گفتم که ترک اصلا از نظر نژادی هم وقتی در ادب فارسی گفته میشه مراد اون چشم بادومی یعنی مردم آسیای شرقی آسیای میان است میانه و اینا رو میگرفتن مصرات... که چه میامدن مثل حتی خواهیل ترک من مهاجرت میکردن دلیلش اینی که اونجا ها بیافون و بسیار سختیه میامدن طرف نواهی ایران و خلاصان و اینا که بفور نعمت بوده میامدن چه از اون که اسلام نرفته بوده، میرفتن مسلمین و اینا رو دست دستی گله گله زن و بچه و دختر و پیسر مردم می بازار می توفتن هر کسی معشوق می خواست می تونست بره بازار سطمان بده که خود بخره عربته خب خیلی قبیهه که آدم ها مثل گوستن تو بازار بفروشن اما خب اگه رسم روزگار این باشه که باید نیست آدم اینقدر پهنایی باندم غلطه آمد دکتر، اگر از روز قلم دسته، باندم دکتر حالا ببخشون ما داره داره. کنم که این حالا مداخت نیست، این هست حرف نیست که باید هم اینا رو تعلیم میدادن، درست میدادن، مدتها جزتون میکردنم ساز، آواز، ساغینجری، شطرنج باختن، تمام وسائل تفریش شفری، دیپ حتی گاهی مقدمات علوم مختلف رو همه رو به اینها میاموختن و بسیاری از شاهان، بسیاری از خلفا مادرشون کنید و اون کسی که میرد می خانم میخرید میاد میوید می میوید برمیدش میوید طوری دل به می می که اصلا شکیب نداشت و خانم تمام زندگی دستا قبضه میکرد تا اون برد بیرون طبقم عشق آمد و های دیگر پاک بود. سوزنی با اگر از کار. برآرد آراد خواهد روش بخواهد هم تورک به تربیت اینا و این مسائل اطلاعاتی بخواهد به کتاب هزار یک چپ مراجبونه خیلی کنیزی هست که میگی که ببر من بازار و بود ده هزار دینار کمتر نکنی این ده هزار نسخال تلاه هم یادتون باشه باید گفتن که این گرونه و اینا بگو که این خانوم بشونین هر علمی که شما به نظرتون میاد علمای در یک میریم و این خانم مباحثه کنه اگر چیکه کن داد اون علما رو 10000 دینار رو بسن. اگر نه بعد میارن دون سانیاست که ست ساعت وقت حدیث هست، بعد یه ما رو آوردن این عالم فقه میاد، اصول میاد، شطرنج باز میاد، نمی‌دونم موسیقی لون میاد، هر میاد خانم همه اینا رو سوکس می‌کنم تا دیوار <تصفيق> دیوونه. فرض کنم که این این ترک اولا، اون ترک مال کجاست؟ مال خطا. آن ترک فرید چهره که دوشش ما رفت. آیا چه خطا دید که از راه خطا را؟ بینید بازید بعد پری کار پنهان شدنه بینید دل رو میبره و بعد از آدمی میگریزه نهان میشه دل از من برد و از من نهان کرد محافظ یکیم که بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچهی شیوه پریدانه یعنی گرفت ببره و رو نهان کنه دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی تمام کرد